آن که از سمبل اوغایتاب بیدارد باز با دل شدگان ناز و تاب بیدارد. ازثر کشته خود میگذری همچون باد چه توان کرد که عمرست و شتاب بیدارد. ماه خورشید نایش ظبحس پرده زلف، آفتابیست که در پیش صحابی دارد چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرش تا سهی سرو تو را تازه ترابی دارد قمزه شوخ تو خونم به خطا میریزد فرصتش باد که خوش فکر صحابی دارد آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست روشن است این که خزر بهر سرابی دارد چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر ترک مست است مگر میل کبابی دارد جان بیمار مرا نیست ز تو روی سوال ای خوشان خسته که از دوست جوابی دارد که کند سوی دل خسته حافظ نظری چشم مستش که به هر گوش خرابی دارد